سوال دیگری نکردم نه برای این که قانع شده بودم برای این که فهمیده بودم کیمیا پاک عاشق شده از دخالت کردن در قضیه ازدواج کیمیا دست برداشتم در زندگی چنان اشتباههای عجیب و غریبی هست که حتی وقتی جلو چشم هایت اتفاق می افتد نمیتوانی دخالت کنی و جلوش را بگیری امسال انگار ماه رمضان زودتر از راه رسید توی خانه از سر کار میریخت جهیزیه آماده میکردیم عید هم زود گذشت چهار روز بعدش کیمیا و شمس را به عقد یکدیگر درآوردیم. شب عروسی همانطور که مشغول کار بودم اتفاق عجیبی افتاد. در مطبخ تنها بودم. داشتم با وردنه روی تخته خمیرگیری خمیر باز می کردم تا برای مهمانها شیرینی بپزم. یک دفعه ناخداگاه یک مشت خمیر برداشتم با آن چانه خمیر شروع کردم به ساختن مجسمه کوچکی از مریم مقدس با نوک چاقو به خمیر شکل دادم حالتی مهربان و دوست داشتنی دادم به صورت مجسمه آنقدر غرق این کاف شده بودم که متوجه نشدم کسی پشت سرم ایستاده چه ساخته ای که را؟ جا خوردم. وقتی برگشتم شمس را دیدم که جلوه در ایستاده. برای قایم کردن مجسمه دیگر دیر شده بود. شمس به تخته خمیرگیری نزدیک شد و به شمایلی که ساخته بودم نگاه کرد. پرسید حضرت مریم است مگر نه؟ وقتی دید جواب نمیدهم لبخند زد. گفت چقدر قشنگ شده؟ دلت برای حضرت مریم تنگ شده؟ از قصد گفتم دلم برای کسی تنگ نشده. خیلی وقت است دینم را انتخاب کردم. دیگر زنی مسلمانم. شمس طوری که انگار حرفم را نشنیده باشد ادامه داد. شاید کنجکاف شده باشی بدانی که در اسلام چرا زنی مثل حضرت مریم نیست. البته جدهمان من حضرت فاطمه هست. اما شاید در نظر تو با حضرت مریم یکی نباشد. مسترب شده بودم. نمیدانستم چه بگویم. شمس گفت اجازه می دهی یک حکایت تعریف کنم و این حکایت را تعریف کرد. زمانی چهار دوست بودند. یکی فارس، یکی عرب، یکی ترک، یکی رومی. از غذا پولی به دستشان می رسند. اما نمی توانند تصمیم بگیرند با آن پول چه بخرند. فارس میگوید با این انگور بخریم. عرب میگوید نه من انب میخواهم نه انگور. ترک مخالفت میکند و میگوید من انب نمیخواهم ازم میخواهم رومی هم تصمیم خودش را میگیرد. بر می گردد و میگوید اینها را ول کنید، بیایید استافیل بخریم. یکی این میگوید یکی دیگری میگوید و آخر سر جر و بحثشان به دعوا میکشد تا اینکه فردی زباندان از راه میرسد و پس از پرسجوی قضیه به آن چهار دوست میفهماند که همگی یک چیز میخواستند اما این بار بحثی دیگر میانشان در می گیرد. هر یک انگور خودش را میپسندند یکی انگور سیاه یکی انگور سبز یکی انگور زرد یکی انگور کبود سرانجام صوفی که ترجمان دلها بوده به آنها بر برمیخورد صوفی که می‌بیند آنها دعوا و مرافعه می کنند از چهار فروشنده چهار خوشه انگور میخرد انگورها را در یک ظرف میگذارد و له میکند آب انگورها را در میآورد و پوستش را دور میاندازد چون اصل جوهر میوه است نه پوستش حکایت که تمام شد شمس شمرده شمرده گفت یهودی و مسیحی و مسلمان مؤمنان این سه بزرگ مثل آدمهای این قصه هند. در ظاهر تفاهم ندارند اما در باتن راهشان یکیست. صوفی به پوسته بیرونی کاری ندارد در پی جوهره درونیست. با دقت گوش می‌کردم ادامه داد منظورم این است که نیازی نیست دلت برای حضرت مریم تنگ شود چون نیازی نیست از او دور شوی اگر پیغمبری از میان زنان برمیخواست مطمئنا حضرت مریم بود اگر کسی که تو را به خدا میپیوندد و به سوی او میخواند حضرت مریم است از راهی که میدانی به طرف او برو زن مسلمان هم میتواند حضرت مریم را یاد کند و در حقش دعا بخواند من, من کنان گفتم اما این کار درست نیست گفت چرا درست نیست همه دین ها رودهایی که به دریایی واحد می ریزند اگر به نظر تو حضرت مریم یعنی شفقت مهربانی، مادری و خیرخواهی در کسفت زن مسلمان هم میتوانی دوستش داشته باشی. حتی اگر بخواهی میتوانی اسم دخترت را بگذاری مریم. گفتم ولی من دختر ندارم. شمس گفت دختردار میشوی. حیرت زده گفتم از کجا میدانی؟ گفت میدانم دیگر بیام که دست خودم باشد لبخند زدم اولین بار از وقتی به این خانه آمده با شمس تبریزی احساس نزدیکی کردم انگار همرازم شده بود کنار هم ایستادیم و با نظری مشابه نگاه کردیم به مجسمه خمیری مریم مقدس او هم با گرمی همیشگیش از روی تخته خمیرگیری لبخند زد و آن هنگام بود که فهمیدم شمس چه انسان گشاد دل و است و چرا شوهرم اینقدر به دوستیش با او اهمیت میداد. در این خانه بماند جایی نرود اما باز هم شک دارم شمس برای کیمیا شوهر خوبی شود.